در زمانهای قدیم زن و شوهری با هم زندگی کردند که خیلی فقیر بودند. کار مرد خوردن و خوابیدن کار زن کلفتی و رخت شوی. یه روز زن به هموم رفت و دید همو غرق شده. پرسید چرا و قرق کردید؟ گفتن برای اینکه زن رمال باشی میخواد بیاد بره هموم. زن با خواهش رو التماس از اون خواست که اونم را بدن. خلاصه انقدر التماس کرد که راش دادن. در همین موقع یه زن چاق و بد ترکیب با چند کلفت از را رسید. کلفت ها زیر بازوهای زن رمال گرفته بودن. زن دید عجب جاه و جلالی. به خونه پگشت و مرد رو از خواب بیدار کرد و گفت ای مرد تو از فردا باید رمال بشی. و حکایت اومدن و رفتن زن رحمالو به هموم از اول تا آخر تعریف کرد. مرد گفت زن دست بردار من که رحمالی بلد نیستم چیزی سر در نمیارم. زن گفت کاری نداره یه تخت رحمالی میخواد و چندتا کتاب کهنه که من برات میخرم. کارش هم اصلا سخت نیست. یه گوشه برای خودت میگیری میشینی؟ رمل میدازیم. هر کی اومد و گفت رمل میخوام میگی بله تاله تو در برج اقربه و به زودی فلان میشه و مهمان اهمان میشه مرد دید فکر بدی هم نیست هم فعال هم تماشا از زنش پول گرفت و رفت اسباب رمالی خرید و گوشه اینش هست. اما از بخت بدی یا شاید از طالع خوش تنبل اولین کسی که اومد سراغش کی بود بچه؟ جلودار پادشاه. جلودار گفت جناب رحمال باشی من شطور پادشاه رو با بار پارچه ابریشم گم کردم. مثل اینکه آب شده رفته توی زمین رمل بندست ببینم کجاست رحمال باشی توی دلش گفت پدرت بسوز زن دیدی چه بلایی به سرم موردی حالا من چیکار کار کنم چه خاکی به سرم بریزم همونطور که با خودش این فکر و خیالها رو میکرد مهره رو دو دستش هی میگردوند که یه دفعه ول کرد محره رو روی تخته و گفت جناب جلو دار باشی. صد دینار نخود میخری و نخودا رو یک یکییکی روی زمین میریزی و میری هر جا تمام شد سه مرتبه دور خودت میچرخی دفعه سوم هر طرف که قرار گرفتی راست شکمتو میگیری و جلو میری و تو پیدا میکنی جلودار همین کارو کرد صد دینار نخود خرید و شروع کرد به ریختن و رفتن وقتی نوخدا تمام شد سه مرتبه دور خودش چرق سد و رفت و رفت تا رسید به یه خرابه. دید چطورش اونجا خوابیده خوشحال شد. مهارش شطور رو گرفت و به قصر پادشاه ها و اونقدر از تنبل تعریف کرد که پادشاه دستور داد. قلاماشو به زودتر این رمال بیاریم به دربار. قلاما به دستورش ها رفتن. سراغ تنبل رو دانش بیشه پادشاه. رنگ از رخسار تنبل پریده بود حقم داشت با خودش گفت عجب غلطی کردم دیدی چطور خودمو دستی دستی بدبخت کردم لعنت خدا به این زن زبون نفهم هرچی میکشم از دست او میکشم این زن آخرش منو به کشتن میده اگه پادشاه بفهمه که من از رمالی چیزی نمیدونم و تنبل باشیم و نه رمال باشی حتما منو میکشه. تنبل گفت بله قربان بفرمایین امری داشتین پادشاه پرسید که تو شطور منو پیدا کردی رمال باشی گفت بله پادشاه گفت آفرین به خاطر این کارت تو رو رمال باشی دربار خودم میکنم، بعدش دستور داد پول زیادی بهش دادن و لباس فاخر و گران مهایی تنیش کردن تعمل از این رو به اون رو شد شب به خونه رفت و گفت ای زن خونت خراب که خونم خراب کردی زن گفت مگه چی شده؟ تعمل تمام ماجره رو تعریف کرد زن گفت ای مرد خدا بزرگه توکره به خدا باشه این فکر خیلال رو از سرت بیرون بیا شاید خواسته خداست که ما بعد از این دیگه بدبختی و بیچارگی نکشیم. راحتتر زندگی کنیم. تنبل دیگه چیزی نگفت و قضاشو خورد و خوابید. مدتی گذشت. هیچ خبری نشد. هر روز تنبل باشی به دربار میرفت و برمیگشت به خونش. تا اینکه یه شب چهل دوز به خزانه پادشاه دست زدن. معاون دزدی کردن و خزانه رو خالی کردن صبح پادشاه تمبر و خواست و یعنی همون که الان دیگه رمال باشی پادشاه شده بود خواست و گفت هر چه زودتر دست به کار شو من دزد جواهرات رو می رمال باشی ناراحت و غمگین به خونه اومد و گفت دیدی زن دیدی به چه روزم انداختی منو فرداست که رسوای عام و خاص بشم زن پرسید باز چی شده؟ تنبل تمام ماجرا رو براش تعریف کرد. زن فکر کرد و گفت نترس. نترس. کمی دل و جرأت داشته باش. فردا به دربار برو و روز مهلت بگیر تا ببینیم چی میشه. تنبل رفت و چهل روز مهلت گرفت و به خونه آمد و گفت ای زن خون من به گردن تو. برای هر کس که پنهون باشه برای خودمون پنهون نیست که من چیزی نمیدونم من رمال باشی نیستم زن گفت ای مرد چقدر بهت بگم خدا بزرگ تفکرتو به خدا کن اگر توکل به خدا کنی دیگه غمی نداری اون خودش میدونه چیکار کنه برو بازار چهل تا دونه خورما بگیر هر شب یه دونه خرما رو بخور هستش رو بنداز تو کوزه که اقلا بدونیم روز چهلم چه روزیه تمبل چهل تا دونه خرما خرید و به خونه آمد و شب همونطوری که درد و دل میکرد یه دونه از خورما رو برداشت و خورد و هستش رو انداخت توی کوزه و گفت این اولیش اما از اون طرف دزداد که با خبر شد بودن پادشاه رمال خیلی ماهری داره همه چیزو میدونه و و حتی میتونه زیر زمین و بالای آسمونم ببینه خیلی ترسیده بودن و دوره هم نشستن و گفتن چیکار کنیم که دست این رمال جون سالم به در ببریم به قرار گذاشتن که هر شب یه نفر بره روی پشت بوم خونه رمال باشی و ببینه رمال باشی چی کار میکنه شب اول طبق قرار قبلی یکی از دوزده به خونه رمال آمد و این درست مصادف بود با زمانی که رمال خورمال خورد و گفت این اولیش دوزده فکر کرد که اون میگه یعنی این اولیش یعنی خود دوزده داره میگه با عجله نزد رفقاش برگشت و گفت هرچه درباره این رمال باشی گفتن همه درسته حقیقت داره اون تو کارش استاده چون من تا پامو روی بوم خونش گذاشتم متوجه شد رنگ از رخسار دزدا پرید و حسابی پریشون شدم روزها باشته سر هم یکی بعد از دیگری دزدا می رفتن روی بوم خونه رمال همون تنبل خودمون و می دیدن که شب یه خرما میخوره و هستش رو توی کوزه می و میگه این دومیش، دو این سوامیش اونا فکر می که منظورشون چیه؟ منظورشون دومین دو دوسته سومین دوست چهارمین دوست از خودشانسیش همزمان شد با هم و اینا فکر کردن که رمال اونا رو داره میگه شب سی دو نهام جلسه تشکیل دادن و گفتن ما اگه زیر زمین بالای آسمونم که بریم هر جا بریم این رمال ما رو پیدا میکنه آخرش ما رو به گشتن میده پس بهتره خودمون پیشش بریم جای پولا رو بهش نشون بدیم شاید به این صورت پادشاه از تقصیر ما بگذره و ما رو نکشه با این فکر صبح روز بعدی شمشیر و قرآن برداشتن نزد رمال باشی رفتن و گفتن که یا ما رو با این شمشیر بگوش یا به این قرآن ما رو ببخش بعد گفتن تمام اون چیزی که ما دزدیدیم صحیح و سالم در فلان بیابان خاط کردیم رمال باشی قدری اونا رو نصیحت کرد و اونا رو بخشید و خوشحال به سمت پادشاه و محل تلاها و جواهرات خزانه رو به پادشاه گفت. اما خب شفاعتشون هم کرد که از تقصیرشون بگذر پادشاه شاق قبول کرد قول داد که از سر تقصیرشون بگذره فقط پرسید راستش رو بگو چرا شفاعت دوست ها رو میکنی؟ رمول باشی جواب داد؟ قربان دوست ها وقتی خبردار شدن که شما این کار دوست دیدن خزانه رو به من محول کردی همگی از ترسشون پا به فرار گذاشتن به یکی از شهرهای مغرب زمین حالا اگر میخوایم اونا رو پیدا کنین باید دو برابر پولی که دزدیده شده خرج لشگر کشی کنید بازم محلومیست که یا بتونید اونا رو پیدا کنید یا نتونیم پیدا کنید پادشاه خود فکر کرد و گفت انگار حق با توه تو نه تنها رمال خوبی هستی خیلی باهوش و کاردانی بعد دستور داد پادشاه که پاداش خوبی به رمال رم بدین خیلی خوشش آمد خیلی خوشش آمد رمالم خوشحال شد و خدا رو شکر کرد و رفت به خونش بزنش گفت آره جریان اینه و بزنش گفت شکر خدا ما دیگه احتیاجی به پول نداریم و اونقدر ثروت داریم که برای هفت پشتمون بس باشه بیاد تا کار به جای باریک نرسیده یه فکری بکنیم و قبل از اینکه گند کار در بیاد منو خلاص کنیم زن یکم کرد و گفت اینو دیگه راست میکیم ما دیگه ایتش به مال دنیا نداریم وقتا اون رسیده که توی یک گوشه بشینیم و زندگی راحتی داشته باشیم ادامه داد فردا صبح وقتی که شاه رفت به هموم تو باید هر طوری شده راهی باز کنی و خودتو به پادشاه برسونی وقتی وارد خزینه شد دست و پاشو بگیر و مثل دیوونه ها اونو از خزینه بیرون ندزی وقتی این کارو کردی مردم میگن رمال باشی دیوونه شده دیگه دست از بر برمیدارن رمال گفت بد نگفتی فردای اون روز همونطور که زنگ گفته بود و قروخ کرده بودن و پادشاه به هموم رفته بود و رمال باشیم، میخواست به هموم بره جلوشو گرفتن و خیلی اصرار کرد بالاخره داخل حمام شد و پادشاه تازه وارد خزینه شده بود که رمال با عجله به سمتش رفت و اونو از آب بیرون کشید نهایتاً سقف خزینه خراب شد و فرو ریخت که از دست رمال خب خیلی عصبانی شده بود اما وقتی که فهمید قضیه از چه قراره دستور داد که از مال دنیا بی نیازش کنین چون جون منو رو نجات داده اگه من تو خزینه بودم اگر سخف خزینه اومده بود رو سرم خب من از بین رفته بودم پس این رمال رو از مال دنیا بی نیازش کنید از اون روز به بعد مهر رمال به دل پادشاه نشست و رمال یکی از نزدیکان پادشاه شد مدتی گذشت رمال که همیشه نگران آخر کار بود باز شبیه از شب و بازنش راز و نیاز کرد و گفت ای زن تا دیر نشدی یه فکری بکن زن گفت مرد حالا که خدا میخواد ما چرا نخواهیم؟ ما باید راضی به رضای خدا باشیم با این همه یه راه دیگه هم وجود داره که اگر اونو انجام بدی شاید تو رو دیوونه بتونن و این بار دیگه از دربار بیرونت کنن رمال پرسید چه راهی؟ که از اوزایی که تمام اعیان و اشراف دور تخت پادشاه حلقه زدن تو از میان جمعیت خواهی تو به تخت پادشاه برسون و دست پادشاه رو بگیر و از تخت به یه طرفی پرتش کن اینطوری همه فکر میکنن که تو دیوونه ای و راحت میشی از این وضعیت مرد قبول کرد و روزی که جمعیت زیادی از اعیان و اشراف و وزیران و امیران به حضور شاه رسیده بودند رمالباشی از میون جمعیت دست پادشاه را گرفت و از روی تخت پرتش کرد پایین ناگهان اقربی به اندازه گنجشکی کوچک از زیر تخت پادشاه بیرون آمد فریاد جمعیت بلند شد و رمالباشی بیش از بیش نزد پادشاه باذع عزیزتر شد با این همه هنوز هم از عاقبت کار می‌درسید روزی از روزها شاه هوای شکار به سرش سد و با خدم و حشب آزم شکار شد رمان باشیم به ناچار با او همراه شد و در کنارش با اسب میرفتن. همونطور که میرفتن یه ملخی آمد روی زین اسب پادشاه نشست پادشا اونو گرفتو، گرفت و ملخو توی دست خودش رو گذاشت مشتش بست و بعد رو کرد به رمال باشی و گفت بگو ببینم توی دست من چیه؟ دیگه دل تو دل رمال باشی نبود روشه کرد با آسمون گفت خدایا آخر مشت من باز کردی پادشا پرسید چی شد رمال؟ نگفت تو دست من چیه؟ تنبل به خدا توکل کرد سیر لاواهسایس زمزمه کرد و گفت یه بار جستی ملخک دو بار جستی ملخک آخر به دستی ملخک پادشاه که فکر میکرد رمال فهمیده به او آفرین گفت و مشتشو باز کرد ملخ پرید و رفت پادشاه رو به تنبل کرد و گفت هر آرزویی داری بگو تا برآورده کنم تنبل که فرصت و مناسب دید گفت من فقط یه آرزو دارم پادشاه گفت بگو تنبل گفت من از کار رمالی خسته شدم دلم میخواد بقیه عمرم رو استراحت کنم پادشاه گفت با اینکه میدونم دیگه رمالی به خوبی تو پیدا میکنم اما چون قول دادم قبول میکنم بعد به او هدایای زیادی بخشید تنبل با خوشحالی نزد زنش برگشت آنها سالهای سال در کنار هم به خوبی خوشی زندگی کردند و هیچ وقت از یاد خدا قافل نشدند.